افسونه افسانه دوستان سلام افثانه ها قصه هایی که نسل به نسل و سینه به سینه حکایت شدن تا پیام یا به دیگران انتقال بدن افسانه ها حتی اگه تخیلی باشن در دلشون پند و اندرزی دارند که میتونه به یادگیری یه مهارت یا یه دانش یا یه رفتار انسانی منتهی بشه افسانه ها قصه های زندگی خوب گرفته با عشق، و امید و مهربانی افثانه که میخوام براتون بخونم نخودی نام داره. یه افسانه ایرانی با حال و هوای ایرانی که در مناطق مختلف روایتهای مختلفی از آن شده. این روایت بر اساس کتاب قصه نخودی نوشته خانم فردوس وزیری تنظیم شده. در زمان خیلی دور، در سرزمین خیلی دورتر، حاکم ظالمی در شهری حکومت میکرد در نزدیکی اون شهر هم ده کوچیکی بود که زن و شوهر پیری در اون روزگارو به خوشی میگذروندن پیرمرد پین دوزی میکرد و زنشم کارای خونه را انجام میداد زن و شوهر خیلی با هم مهربون بودند. هر دو اهل وفا، اهل فدوکاری، اهل گذشت و اهل سخاوت اما اما یه قصه بزرگ داشتن اونم این بود که فرزندی نداشتن روزی از روزها وقتی که پیرزن داشت برای ناهار آش میپخت قصهش گرفت یاد آرزوی همیشگیش افتاد اینکه چه دلش میخواست یه بچه داشته باشه تا لذت مادر بودن رو بچشه پیرزن در حالی که آش رو به هم میزد زیر لب دعا میکرد خدایا خودت بهتر از هر کسی میدونی تو دل من چی میگذره میدونی من چی میخوام میدونی همین الان که دارم این آشو به هم میزنم چه آرزوی تو دلمه ولی بازم میگم میگم تا این بارم آرزومو بشنوی. خدایا کش من یه پسر داشتم یه پسر زری یه پسر که بشه اسای دست منو و شوبرم رد و و شکل و حیکل پسرم هم اصلا مهم نیست تو یه پسر به من بده حتی اگه اندازه یکی از نخودایی همی آش باشه ای خدا هنوز حرف پیرزن تمام نشده بود که یکی از نخودایی که داخل دیک بود بیرون پرید و فریاد زد زرام س -س -س -س -س سلام تو تو اس هستی اس اس اس اس من اس پسر تو. مگه اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس که اس اس اس اس اس اس اس اس اس من اس دیگه اس بابا واقعا با من نمی‌کنی من پیش‌داریدم پیرزن نمی‌تونه چیزی رو که میدید باور کنه آخه یه پسر چطور میتونست هم قد و قواره یه نخود باشه نخودی با اون دست و پای نازکش آهسته اومد و پهلوی پیرزن نشست نخودی اینقدر کوچیک بود که نزدیک بود لای چینای دامن پیرزن گم بشه با این حال سرشو بالا نگه داشته بود و به پیرزن نگاه می کرد وقتی که دید پیرزن دلتنگه و حرفی نمیزنه، اومد بالا و روی دست اون نشست و گفت مادر جون، چرا داری گوشته می خوری؟ نگفتی اگه یه بچه داشته باشی دیگه گوشته نمی حالا که بچه داری بازم داری خوشته می خوری؟ مادر مادر گفتم گفتم که اگه یه پسر داشتم دیگه قصه نمیخوردم خب دیگه نکنه منو به پسری قبول نداری آره منو به عنوان پسریتون قبول نداری چرا ولی ولی چی؟ ولی تو خیلی کوچیکی درسته که من آرزو کردم کاش یه پسر اندازه یه نخود داشته باشم اما حالا که فکریشو میکنم میبینم تو خیلی کوچولویی. آره من خیلی کچلو ولی در عوض دلم خیلی بزرگه ای آخه دل بزرگ به چه دردی میخوره ننه به درد میخوره حالا میبینین به درد میخوره میدونی چیه نخودی؟ خودی من خیلی خوشحالم که پسر مهربونی مثل تو دارم اما اما چی؟ خب به من بگین چی تو دلتونه مادر جون دلم میخواست پسرم میتونست برای پدرش قضا ببره دنم میخواست همین الان میتونستم کمی از این آش رو توی ظرف بریزم و پسرم برای پدرش ببری این نداره قضا رو بدین به من تا ببرم برای پدرم پسرم تو به این کوچیکی چطور میتونی ظرف غذا رو ببری؟ نگران من نباشین مادر شما فقط و داخلی یه ظرف بدیدین نو ظرفو سر من آه. بعد ببینین من چطور گونو میبرم برای پدرم <تصفيق> راست میگینو خودی آه. معلومی که راست میگم شما آشو به من بدین ببینین چطور گونو صحیح و شالم برای پدرم میبرم <تصفيق> کمی آش در ظرفی ریخت و روی سر نخودی گذاشت نخودی به راه افتاد اما اونقدر کوچیک بود که کسی اونو نمی دید. مثل این بود که ظرف خود به خود داره راه میره. پیرزن باز هم خندید ولی هنوز خندش تمام نشده بود که نخودی از در بیرون رفت و به طرف دکان پیرمرد به راه افتاد پیرمرد پیندوز در دکان نشسته بود ناگهان دید یه کاسه آش خود به خود حرکت میکنه و به اون نزدیک میشه تعجب کرد حتی کمی هم ترسید همون موقع نخودی کاسه رو مقابل پیرمرد روی زمین گذاشت و گفت سلام پدر سلام تو, تو, تو کی هستی؟ من نخودیم پسر تو برات غذا و پسر من؟ بلی من... من که پسری ندارم چرا چرا داری؟ من پسر شومان مدر خودی شما میتونی ببوزین که من به هستم یا نه سلام سلام, سلام. سلام. تو اینجا چی کامی یه نفس دنبال نخودی دویدم ببینم میتونه بیاد تو. ظرف آش رو برات بیاره یا نه؟ این بچه چی داره میگه؟ راست میگه که پسرمونه هر چی میگه راست میگه من موقع پختن آش دعا کردم خدا بنیم یه بچه بده مم. حتی اگه اندازه یه نخود باشه بدم یه نخود از تو پرید بیرون و شد پسرمونه وری این همون پسریه که سالها وارث میشه داشتی به چی فکر میکنی پدر هنوش بابا نیمیکنی من پسرتونم من, من, من خیلی خوشحالم که پسری مثل تو دارم ولی دلم میخواست پسری داشته باشم که بتونه حقمو از حاکم بگیره چه حقی؟ خب سالها پیش وقتی که من در شهر زندگی میکردم برای دختر حاکم کفشی دوختم که خیلی قشنگه. خیلی هم برای درست کردن اون کفش زحمت کشیدم اما حاکم پول اون کفش رو به هم نداد حالا که من پیر شدم نمیتونم به شهر برم و حق خودم رو از حاکم بگیرم این که قوشت نداره پده خودم به شهر میرم و حق تو از حاکم زورگون میگیرم نه نه نه نه پسرم تو،, تو نمیتونی این کارو بکنی چون نمیتونی؟ چون... تو هیچ جا رو بلد نیستی و هیچ کسی رو هم نمیشناسی زور و بازوی هم نداری که حریف زورگوی حاکم بشی آخه چطور میتونی تک و تنها به شهر بری و حق منو از اون حاکم ظالم بگیری؟ من میتونم پگر بواه کنی میتونم حاکم نگهبانای زیادی داره اون حاکم قدرتمندیه به تو رحم نمیکنه. قدر از در عوض من هم بزرگی بزاری دارم رست باور کنیم میتونم با باکم بزنگم و حقیتون ازش بگیرم شما فقط به من اجازه بگیرم برم شهر خیالم راحت باشه پسرم بله. خیالم راحت باشه که برات اتفاقی نمیافته خیالتون راحت من حقیتون رو از حاکم میگیرم و برمیگردم با باشه پس برو به سلامت خدا حافظ خدا خدا با اصرار نخودی پیرمرد اجازه داد که نخودی به شهر بره و حقشو از حاکم بگیره فردای اون روز نخودی به طرف شهر به راه افتاد هنوز از ده بیرون نرفته بود که به یه تنور آتش رسید آتش توی تنور داشت گور میگرفت و شعله میکشید. سلام کجا میره نخودی؟ من دارم می چی؟ دارم میدم حق پدرم و از حاکم شهر بگیرم آه منم با خودت میبری خیلی دلم میخواد شهر رو ببینم از اینجا شهر خیلی دوره تو چطور میتونی این کمی راه با من بیای؟ میتونم تو فقط منو ببر باشه باشه دل من خیلی بزرگه من چرو تو, تو دلم جا میدم؟ دلت. آره تو دلم درسته که من خیلی کوچیکم ولی دلم بزرگی نگران نباش نوخودی آتش رو در دلش جا داد و به طرف شهر به راه افتاد مدتی راه رفت تا اینکه به یه رودخانه رسید رودخانه مثل همیشه آوازخان و شاد جاری بود همین که چشمش به نخودی افتاد فریاد زد آهای آه نخودی اه؟ داری کجا میری؟ دارم میرم برای چی؟ میرم تا حق پدرم و از حاکم زورگو بگیرم <تصفح> تو؟ تو میخوایی بری شرط حق پدرتو از حاکم بگیری؟ <تصفح> نمیتونی تو با این قد و قواری نخودی چطور میتونی با حاکم به جنگی نخودی قد و هم ولی دلم بزرگه مگه با دل بزرگ میشه جنگی؟ بله میشه می میبینی حالا که داری میری شهر منم با خودت برم شاید به دردت بفرم آخی من تو با هم یکی نیم. تو میتونم تو با خودم ببرم تو اگه منو با خودت ببری شه من همون راهی رو میرم که تو میری یعنی با تو مسیر میشم آم... باشه پس تو هم که دلم زیاد تو دله؟ آز... نخودی رودخانهرم در دلش جا داد و راهی شهر شد کمی بعد سر راه شیری دید که قررش کنان به او نگاه میکرد کجا داری میری اگه تو شهر چه خبره که داری این همه راه میری تا به شهر برسی. خبری نیست فقط میخون بیم حق پدرم از اون حاکم زرگو بگیر تو با این قط و قواره ناخدی میخوای حق پدرتو از حاکم مگیری معلومی که حقشو میگیرم درستی که من خود سیکم بلی جدم بزرگه خدا میبینی که چطوری حقمو ازش میگیرم قسمانم با خودت ببر تا کمکت خود تو با خودم ببرم. ولی مردم از تو میتوشن من که کاری به مردم ندارم فقط میخوام با تو باشم. خب اون گل میگی به مردم کاری نداشته باشی و اون رو نکنی بله بله باشه بای میدم بس قبوله تو تو دلم میدونم و با خودم میبرم بشه تو دلت؟ <تصفيق> مگه من تو دلت جا میگیدم معلومی که جا میگیده دل من خیلی برگه نو شیر هم تو دلش جا داد و به راهش ادامه داد هنوز چند متری دور نشده بود که چشمش به یه روباه افتاد رو <تصفيق> کجا داری میری نخودی؟ دیگه میم شند تو حق پدرمو از حاکم یرگو بگیرم چه عرف خنده داری جدی نخودی؟ تو با این قد و قواره نخودی میخوای بری با حاکم بجن جو حق پدر تو ازش بگیری؟ بلی، درستی که قد و قوارم نخودیه ولی دیل بزرگی دارن خب، بخش، حالا که داری میری، شد منم با خودت میبریم چرا نمیتونی؟ چون ممکنه مردم فکر کنن میخوای فری بشون بدی؟ نه من با مردم کاری ندارم فقط دلم میخواد شهر رو ببینم آه، باشه هستور هم من خودم میبرم تو تو دلم تو دلت؟ گفتم که دلم من خیلی بزرگه تو تو دلم میتونم و با هم میرم سر نخودی در حالی که آتش و رودخانه و شیر و روباه و در دلش جا داده بود به طرف شهر به راه افتاد بعد از ساعتها راه رفتن بالاخره به شهر رسید و گشت و گشت تا تونست حاکم و پیدا کنه و به درباره حاکم بره تو کیستی و در دربار من چه می چی <تصفيق> تو اومدی حق پدر تو از من بگیری همره بهچ میخردی به اینکه تو با این قد و قواره چطور جرأت میکنی روی من بایستی یا بگی میخوای حق پدرت تو بگیری <تصفيق> بل من حق پدرمو از تو می حالا میبینی كدوم حق من پسر هیپینه دوزم که تو رستا زندگی میکنه چند ساله پیس پدرم برای دختر تو یه جفت کفش دوخت. ام. ولی تو پول اون کفش رو به پدرم ندادی. حالا من اومدم تا اون پولو ازت بگیرم و ببرم. تو با کدوم قدرت میخوای حق پدر تو از من بگیری؟ من دل بزرگی دارم. دل بزرگ؟ یعنی میخوایی با دل بزرگ با من بچنگی حب <تصفح> به پدرم و من از اینجا برم آه دیگه داری من میکنی آی خولان بله سار برم. زود این نخود ریزه میزه رو بنداز تو لونه مرغا تا تومه مرغا به شما حرف زدن یادش بره زود باش اتات. گمیاف قلام دربار خیلی زود نخودی رو میبره و داخل لونه مرقا میندازه مرقا همین که چشمشون به نخودی افتاد به نخودی حمله کردن و میخواستن اونو بخورن اما روباهی که داخل دل نخودی بود صدای مرقا رو شنید و از دل نخودی بیرون اومد و افتاد به جون مرقا مرقا با دیدن روباه ترسیدن و وحشت زده پا به فرار گذاشتند. نخودی در لونه مرقا نشست و شروع کرد به آواز خوندن وقتی قلام اومد تا به مرقا دونه بده دید که از مرقا خبری نیست و نخودی هم با خیال راحت داخل لونه نشسته و داره آواز میخونه قلام رفت و به حاکم این خبر داد یعنی چی که نخودی با خیال راحت داخل لونه نشسته بود داره آواز میکنه. پس شما ها چغللتی؟ چطور اون مرغ ابله نتونستن این دونه نخود و بخونه میدونم گربان. حالا می بینی باات چیکار میکنم؟ نخی؟ آیقلم؟ بله سر این نخودی زبون درازو ببر بنداز شده اون گرگای گرس که چند روز غذا خورد. بله میخواام همتون به چشم خودتون ببینین که اون گرگگاه چه بلایی سر نخی میارن؟ قلام حاکم خیلی زود نخودی رو برداشت تا ببره بنداز داخل قفص گرگاه گرسنه اما در همون حال متوجه شد که نخودی در حال آواز خوندنه. او از این رفتار نخودی عصبانی شد و اونو پرد کرد وسط قفس گرگای گرسنه. گرگا با دیدن نخودی به سمت اون حمله ور شدن تا اونو بخورن. در همین موقع شیر با شنیدن زوزه گرگا از دل نخودی بیرون پرید و در یک چشم به هم زدن گرگا رو تیکه پاره کرد. وقتی قلام حاکم اومد و دید تمام گرگا تیک پاره شدن و نخودی هم یه گوشه نشسته و داره آواز میخونه خبر رو به گوشه حاکم رسوند. شما چه غلطی میکردین که یه نخودی فسقلی و ریزه میزه اونجوری گرگای گرسنه رو تیک پاره کرد مگه اون گرگا گرسنه نبودن؟ جرم. چطور نخودی تونست اونا رو به این روز بندازه؟ بباشید حالا که اینطور شد؟ باید بلایی به سرش بیارم که مرغای آسمون به حالش گرید بله خورمان بله غلام خورم. بله, بله خورمان فوراً برو تمام دربار دربارو جمع کن وسط عیاتو یه آتیش بزرگ درست کن و این نو زبون نفهمو بند از وسط میخواد بدونم این دفعه چطور میخواد از وسط های بلند آتیش خودشون نجات بده لمای دربار خیلی زود تمام هیزمایی که در انبار دربار بود جمع کردن و آتش بزرگی وسط حیات درست کردن و نخودی رو پرتاب کردن وسط آتش اما هنوز پای نخودی به آتش نرسیده بود که رودخانه از دل نخودی بیرون زد و آتش رو خاموش کرد مدتی بعد وقتی غلاما اومدن تا از سوخته شدن نخودی مطمئن بشن دیدن که نخودی با خیال راحت روی یه تیکه چوب نشسته و مشغول آواز خوندنه اونا نخودی رو برداشتن و کشان کشان پیش حاکم بردن حاکم وقتی دید نخودی صحیح و سالمه عصبانی شد و فریاد زد قربان قربون ابدمش لانتی لانتی لانت تو جنوز زنده یا داری به من نگاه میکنی بله تو حق پدرم و ندی از اینجا تو هیچ حقی نداری نخودی حق تو اینه که به دست من کشته بشی همین الان دستور میدم تو رو مندزن داخل گودال یخی بیرون شهر که هیچ موجود زنده ای نمیتونه از اونجا جون سالم به در ببره وقتی تو اون گودال از سر یخ زدی اون وقت میفهمی نمیتونی با حاکم قدرتمندی مثل من مبارزه کنیم علما نخودی رو بردن و اونو در دره یخی انداختن ولی نخودی با اون دل بزرگش اونجا هم تنها نبود میدونیم چرا؟ چون خیلی زود دوستش آتش از دل نخودی بیرون زد و نخودی رو گرم کرد و اجازه نداد تا نخودی از سرما یخ بزنه. فردای اون روز غلامای دربار با خیال اینکه نخودی از سرما یخ زده به دره یخی اومدن اما وقتی دیدن که نخودی با خیال راحت وسط دره نشسته و داره آواز میخونه متعجب شدن و نخودی رو پیش حاکم بردن تو تو چرا نمیمیری نخودی ریزه میزه؟ من نیمدم شرکه بمیرم جناب حاکم من اومدم حق پدرم و از شما بگیرم و برگردم روش دا. کدوم حق؟ پدر من پینه دوزه. جان هپی سپای دخترت دیگه کفش توتو تو خونه اونارو به پدرم ندادی اگه اون پولو بگیری از این شهر میری بله جناب به <تصفح> بسیار خوب بسیار خب همین الان دستور میدم از خزانه دربار اون پولو به تو بدن <تصفح> ولی وای به حالت وای به حالت اگه یه بار دیگه تو رو تو این شهر رو این دربار ببینم خودم تیکه تیکت میکنم نو اگه حق پدر منو بدین من میرم و دیگه پشت سر من نگاه نمیکنه <تصفح> ای قلام بله قربان فوراً برو به وزیر خزانه بگو پول کفشی رو که پدر نخودی درست کرده بود بیاره بده به نخودی تا خیلی زود این دربار رو ترک کنه عجله کن نتهت سر برم بیار پدرش رو از حاکم گرفت و خوشحال و خندان به طرف روستا به راه افتاد در راه به جایی رسید که اولین بار روباهو دیده بود اه اه دوست من اگه اجازه بدی من همینجا از تو جداشم کس میتونی با من به روستا بیار نه نه خودی روستا جایی من نیست من باید همینجا پیش خونواده و دوستام زندگی کنم من بودی من از تو چیزایی زیادی یاد گرفتم تو خیلی زرنگ رو باقویشی به من کمک کردی تو حق پدرم رو از حاکم بگیرم من محبتی تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنه. تو هم پسر مهربون و باهوشی هستی منم هیچ وقت رو فراموش نمی <تصفيق> با هم خداحافظی کردن و از هم جدا شدند. نخودی رفت و رفت و رفت تا رسید به جایی که شیر و دیده بود روسته من ام. به من اجازه بده به خونم برگردن. تو با من به نمیای؟ نه نخدی اگه بیام روسته ها مردم از من می ترسن. من باید تو همین جنگل رو کنار خونوادن زندگی کنم من گردی تو حق پدرمو از حاکم بگیرم من تو هیچه فراموش نمی کنم من از تو سجاعت یاد گرفتم <تصفح> تو هم به سر واقونش رو جایسی. من هیچ وقت فراموشت نمی کنم نخودی از هم حافظی کردن و نخودی به راهش ادامه داد تا به جایی رسید که رودخانه رو دیده بود رودخانه گفت منم میخوام به خونه خودم برگردم نخودی و من به روشتا نه نخودی مسیر حرکت من مشخصه من باید در جای خودم حرکت کنم و جاری بشم باشه تو به من کمک کردی تو هم به بگیرم. من هستی شجاعت رو دلیلی رو یاد گرستم. تو به من جدودی که بایست کار داشته باشم و همیشه رو به دلو حرکت کنه تو هم پسر شجاع و مهربونی حسینه خودی منم هم هیچ وقت تو با مهربونی تو فراموش نمی کنم. بودخانه و نخودی از هم جدا شدند و نخودی به راهش ادامه داد تا به جایی رسید که برای اولین بار آتش را دیده بود آتش گفت حاب دوست عزیز فکر کنم من و تو باید همین جا از هم جدا بشیم." تو به من خیلی کمک کردی تا تو تونستم ام. حق پدرم و از حاکم بگیرم من محبت تو رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. تو هم دوست خیلی خوبی برای من بودی من از تو یاد گرفتم که توی کارام همیشه باید دلگرم و امیدوار باشم منم مهربونه کردن از تو یاد گرفتم حالا کجا میری نخودی؟ من دیگه به رسیدم میرم منزل و به پدرم میگم که حقشو از حاکم زرگو گرفتن <تصفيق> نخودی حالا شاد و سرحال به طرف دکان پینه دوزی پدرش می رفت. از اون طرف پیرزن و پیرمرد با نگرانی منتظر بودند تا نخودی به روستا برسه. همین که چشم پیرمرد به نخودی افتاد از خوشحالی فریاد زد. نه خودی خودتی خودمم پیدر خدا یا باورم نمیشه که این خودتی نه خودی خودمم مدر خودم. بیا بقیل حالا <تصفيق> خوبه خیلیم خوشحالم ببینم چونه سیحاکم رو ببینی نه خودی بله پیدر هم دیدمش هم حق شما رو ازش گرفت راست بگی نه خودی بله مدر اوه پلی که به باورم نمیشه نو خودی. تو چطور تونستی بری شهر و حاکم رو پیدا کنی و این پول رو ازش بگیری؟ جوشتانیش ما فرسله فقط بدونیم که وقتی ادم دلش بزرگ باشه هر قلی رو میتونه انجام بده دل که بزرگ باشه با کلی ادم هایی مهربان دوش میشی که به وقتش برات فداخوری میکنه نخودی <تصفيق> یه ریزه <تصفيق> گربونی تو بسر خوب و مهربونم باید به خاطر این پیروزی و موفقیت یه جشن بگیری کنم. <تصفيق> اونم چه <چی> جشنی؟ یه جشن درست و باید همه اهل روستا رو به این جشن دعوت کنم بیا نو خودی بیا حالا بیا کنار منو مادرت بشین و عزیزه تو بیاز برامون تعریف کن تو این سفر چی دیدی چی دیدی, دیدی بله دوستان نخودی همه آنچه را که در سفر به شهر براش اتفاق افتاده بود برای پدر و مادرش بازگو کرد. پدر و مادر هم به خاطر داشتن چنین پسر مهربان و باهوشی جشن بزرگی ترتیب دادن و همه اهالی روستا رو به اون جشن دعوت کردند. افسانه یا که براتون خوندم افسانه نخودی بود برگرفته از کتاب قصه نخودی نوشته خانم فردوس وزیری حالا هم من هم شما خوب میدونیم که به قول نخودی افسانه ما وقتی آدم دلش بزرگ باشه هر کاری رو میتونه انجام بده دل که بزرگ باشه با کلی آدمای مهربون دوست میشی که به وقتش برات فداکاری میکنه همراهان عزیز رادیو شما میتونید با تلفن گویه 162 تماس بگیرید و نظر و پیشناهاد و انتقادی رو که دارین با ما در میان بذارین. سامانه پیامکی رادیو نمایش 30175 به ما پیامک بزنین و نظرات خودتون رو در مورد افسون افسانه بگین. نشانی ما رادیو نمایش نقطه برای رادیو سوهیلا خدا دادی. راوی محروخ افزالی بازیگران فریبا متخصص نگین خاج نصیر علی دریایی ایوب آقاخانی، مونا منا صفی اسماعیل بختیاری مهدی نمینی مقدم احمد گنجی اکبر مولایی کارگردان بهرام سروری نشاد افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار علی حاجی نروزی تهیه کننده زهرا عبدالله زاده افثانه ها رنگی از زندگی افسون زندگیتون دلنشین و مانا. تا سلامی دیگر به